فصل 32 در پاییز سال 1941 من و هستید به طرف لارنس ویل به راه افتادیم تا در مدرسه آنجا کوشش زیاد بکنیم و رضایت پدرم را جلب نماییم ما هرگز اینقدر از منزلمان دور نشده بودیم و اینقدر احساس غربت و تنهایی نکرده بودیم روز 7 دسامبر پرل هاربر مورد حمله واقع شد و میهن ما وارد جنگ شد هزاران جوان از جمله من بسید به ارتش احزار شدند قبل از این احضار ما همه علاقه خود را به درس از دست داده بودیم و دیگر درس خواندن را اتلاف وقت میدانستیم. جنگ باعث شد که سه عضو وفادار خانواده من را از دست بدهیم فرانک کی و جورج، مستخدمین ژاپنی وفادار پدرم که در دوران کودکی مصاحب ما بودند دولت آنها را به اردوگاه مانزنار فرستاد فرانک اهل هاوایی بود و آن دو به سرعت هرچه داشتند فروختند و آماده تسلیم به سرنوشت شدند به دنبال آنها خلع عظیمی در منزل فراز تپه آشکار شد پدرم علاقه بسیاری بدانها داشت ولی هیچ کاری از دستش ساخته نبود پدرم هرگز نامهای برای فرانک نروشت ولی او را فراموش نکرد و هر ماه چکی برای او میفرستاد، و هنوز هم این کار را می کند. در طی تابستان سال 1942 وقتی که از مدرسه بازگشتیم مستخدمین انگلیسی جای دوستان قبلی را گرفته بودند آنها خیلی معدب و در عین حال به اصطلاح نجیب بودند و ما به یاد مستخدمین ژاپنی که آنقدر ساده و با محبت ما را بزرگ کرده بودند و در خانواده ما سهمی داشتند تأسف میخوردیم. پدرم از چالاکی مستخدمین ژاپنی و از صداقت فرانک محروم شده بود. گاهی درباره انگلیسی‌ها گفت اینها خیلی منظم هستند و بعد با افسوس میافزود ولی خیلی کند هستند و ساعتها طول می تا چیزی را فراهم کنند. در آن تابستان 1942، پولت در مکزیکو رسمن از پدرم طلاق گرفت. همان کسی که در سال 1936 در کانتون چین به عقد پدرم در آمره بود، بدین ترتیب از او جدا کردید. علت طلاق عدم تفاهم اخلاقی و یک سال جدایی بود. این طلاق به آنچه من وستید را به دوران کودکی من وابسته می‌ساخت، خاتمه بخشید. ولی رفتن پولت دوستی ما را با او از میان نبرد و ما همیشه نسبت به یکدیگر صمیمی باقی ماندیم و او را همچنان در شمار افراد خانواده خود می‌دانستیم و هنوز هم چنین است. پدرم گاه گاه او را می‌دید و غالبا پولت ما را دعوت می‌کرد که برای صرف نهار یا شام نزد او برویم. گاهی هم با او به سینما یا شبنشینی های کوچک می رفتیم. یک روز هنگامی که من در ارتش بودم و در نمایش نامی با شرکت فردریک مارچ و فلورانس التریچ بازی می پلیس به من تلفن کرد او در ماه مهه 1946 با بورگس مردیت ازدواج کرده بود و در سال 1949 در مکزیکو از او طلاق گرفته بود و حالا باز هم تنها بود او به من گفت من با یکی از افسران دریایی حادثه ناراحت کننده به هم زدم چارلی چرا با من بیرون نمیایی؟ من به او گفتم که از این کار خوشنود خواهم شد ولی وضع مالی جالبی ندارم پولت خندید و گفت اندوه نخور من قدری پول دارم که بیشتر آن را در دوران زندگی با پدرت ذخیره کرده پولت به شوخی از پولی که پدرم به او میداد می کرد. او می گفت، پدرت در ازدواج با من اشتباه کرد من حتی کشتی هم خریدم. من هرگز نمیدانستم و نمیدانم پدرم چه مبلغی به او داده است بعضی میگویند که در حدود یک میلیون دلار بوده است. وقتی پلت درباره این پول شوخی می کرد همیشه می گفت، پدرت مرد جالبی است و تا باید شبیه او گردی. پدرم هم هنوز پلت را دوست می داشته میگفت زن پدر سابقت بسیار خوب بود. به خصوص خیلی چیزها می دانست و با همه لحن شوخی آمیزش معلوم بود که اندوگین است. و همیشه در مورد جنس لطیف به ما نصیحت میکرد و میگفت زن زن هرچند هم خوب باشد دیرگیاز بود به فکر سرکیست کردن مرد می افتد. پدرم حالا دیگر به فکر معشوقه های ما هم بود. ما دوستان دخترمان را برای شنای در استخر به منزل می آوردیم. در آن تابستان 1942 من با جوان باری ملاقات کردم. او مثل همیشه خوشگل و شادان بود و موهای خرمایش چون اپری بر شانه ریخته بود. پدرم به من می گفت جوان هنرپیشه فیلم آینده من خواهد بود. جوان هم پدرم را ستایش می کرد. پدرم در باری او میگفت: جوان هنرمند است و چیز خاصی در او وجود دارد. او بیش از آنچه فکر می کردم هنرمنده است. و اگر بتوانم استعداد او را به راه درست بیندازم یک فیلم عالی با او خواهم ساخت پدرم در این گفته که میخواست از میسجوان جوان هنرپیشه یه بزرگی بسازد به راستی صادق بود ولی بسیاری این روابط را به دیده دیگری مینگریستند و گمان میبوردند و حتی یقین داشتند که پدرم فقط در کار رو بودن دل زنان است علاقه پدرم به هنر بزرگترین صفت اوست و کسانی که با او کار کردند، گواه صادقی بر این ادعایند. او هیچ وقت زنی را به خاطر زیبایش در فیلم شرکت نمیداد. هنرپیشگار زن او میبایست، هنرمند باشند و او پول و وقت فراوان برای بکار کشیدن استدادانها خرج میکرد. فیلمی که پدرم میخواست با شرکت جوانباری بسازد، سایه و اصل نام داشت. پدرم برای این فین قراردادی با جوان بست و او را مدتی برای فراگرفتن اصول هنر نمایش به کلاس ماکس رینهارد فرستاد. در این حال پدرم با تمام قوار روی این سناریو کار می کرد. از طرف دیگر پدرم در مجالس خصوصی جوان را در پیس شکسپیر به بازی می گرفت و هنر او را به همه نشان بدهد. جوانباری استعداد زیادی داشت ولی آن سفت خاصی که باید در یک هنرپیشی بزرگ باشد در او نبود و از طرف دیگر نمی توانست انتظارات فراوان پدرم را در مورد پیشرفت کار هنریش برآورده سازد جوان بسیار مستقل و تب بود اوقات دیر به جلسه می آمد و بعضی روزها هم اصلا نمی آمد. از همان آغاز کار تایم دوران و بعضی دوستان صمیمی پدرم پیشنهاد کردند جوانباری را کنار بگذارد. آنها او را دختر غیر متعادل می دانستند ولی پدرم همیشه فکر می کرد که میتواند از او هنرپیشه بزرگی بسازد. و بالاخره پدرم هم متقاید شد که جوان با وجود استعداد فراوانش نمیتواند هنرپیشه برجستهای بشود. در همان تابستان یک شب من و جوان به اتفاق مدر در کانسرتی شرکت کردیم و مدر بزرگ مرتباً به جوان می گفت که اگر در یکی از فیلم های چارلی شاپلین شرکت کند شانس بزرگی آورده است. از طرف دیگر جوان با مردان زیادی رابطه داشت و یک روز که به دیدارش رفته بودم مردی را در خانه او دیدم. به هر تقدیر موقعی که من به لارنس ویل بازگشتم اوضا چنان بود که شهر دادم سیتی از وضع مدرسه دلتنگ بود، همراه من نیومد او تصمیم گرفته بود یک سال را در نارسالی بودهای بوکسراند، ولی من میخواستم پدرم را راضی کنم. اما خیلی زود متأسف شدم که چرا از روش سیتی پیروی نکردم. تنها تر و تر از همیشه بودم و یقین داشتم که به زودی به چپه اروپا ازام خواهم شد. و هنگامی که پدرم در ماه اکتبر برای ایراد سخنرانی به آن حوالی آمد، بسیار خوشحال شدم. او از مدرسه اجازه گرفته بود که به دیدارش بروم. پدرم به منظور آماده ساختن افکار عمومی برای گشایش جبه دوم سخنرانی کرد. اولین سخنرانی او در سانفرانسیسکو انجام شد تا مردم را به لزوم کمک به روزها متقاعد سازد. پدرم سخنرانیش را با دقت زیاد فراهم کرده بود. ولی مریض بود و هنگام سخنرانی مجبور شد تریبون را ترگوید. و بعد از بازگشت یادداشت‌هایش را گم کرده بود و مجبور شد فلبداهه در مقابل هشت هزار نفر که جمع شده بودند سخن بگوید. او یک ساعت و نیم صحبت کرد و حاضرین چنان تحت تأثیر قرار گرفته بودند که صدای پرواز یک میز هم به گوش می رسید. او در نیویورک نطخی به نمایندگی از طرف جبهه هنرمندان برگ پیروزی در جنگ ایراد کرد. این سازمان به داشتن تمایلات دست چپی معروف شده بود. ولی پدرم هیچ وقت کمونیست نبود. او فقط روزها را به خاطر روشی که در مقابل آلمانها در پیش گرفته بودند ستایش می‌کرد و تصور می‌نمود که کمک به روزها و گشایش جبهه دوم منجر به پیروزی در جنگ خواهد شد. ولی چنان حرارتی به خرج میداد که امریکایی ها روشش را غیر معقول دانستند چون او آمریکایی نبود و ها اظهار میکردند که او به سیاست جنگی کشور بیگانه بیش از حد علاقه نشان میدهد. در عوض بسیاری با او هم عقیده بودند چندی بعد سخنرانی پدرم را به عنوان دلیل کمونیست بودن او مطرح ساختند و فراموش کردند که در هنگام ایراد این سخنرانی روسیه متحده آمریکا بوده است. هنگامی که به والفورد تاورز رسیدم پدرم لباس برتن داشت و در طول و عرض اتاق راه می رفت و همانطور که همیشه قبل از بیان خطابه ها عادتش بود با خود حرف می زد. او اصابون یا بیمار بود و مرتباً به توالت می رفت. من به خاطر او بسی ناراحت بودم. من نمیتوانستم برای شنیدن نطق بمانم و مجبور بودم به مدرسه بازگردم و از این حیث احساس اندوه میکردم. چون دلم میخواست در نیویورک بمانم و با پدرم و تایما خوش باشم. پدرم آن قطرها که فکر سر حال نبود. این را می‌دانستم که پدرم همیشه دلش می‌خواهد درباره تراژدی تصادفات زندگی بیاندیشد. هرکس کس مسئول عواقب اعمالی است که انجام می‌دهد کوچکترین حرکت حتی غیر ترین حرکات ممکن است سراسر زندگی انسان را به بدبختی بکشاند بعد از حادثه جوانباری من همیشه در فکر سرنوشت شومی بودم که پدرم را دنبال می‌کرد تنها کاری که او کرده بود بسیار شرافتمندانه بود اندکی بعد از مراجعت من به مدرسه، پدرم فکر تهیه فیلمی را که در نظر داشت تحییه کند، از در کرد. او تا آن موقع 150 هزار دلار برای این فیلم خرج کرده بود، ولی فکر میکرد نمیتواند یک نخشه 2 میلیون دلاری را روی هنر و استعداد جوان باری تر نماید. جوان خیلی زیاد از حد رویاپرور پرور بود. در همین موقع، جوان هم متوجه شد که به درد هنر پیشگی نمیخورد. بس پدرم درخواست کرد که قرارداد او را لغو کند و مخارج بازگشتش را بپردازد. پدرم این را پذیرفت و قروس جوان را که بالغ بر 500 دلار بود پرداخت و او و مادرش را با خیالی آسوده روانه کرد. بعد از این جریان پدرم به نیویورک رفت تا سخنرانی کند و در آنجا جوان به او تلفن کرد. پدرم نمیخواست جواب او را بدهد ولی جوان تهدید کرد اگر پدرم حاضر به شنیدن حرف های او نشود شود خود را از طبقه بیستم امارتی که در آن بود به زیر خواهد انداخت این اولین تهدید به خود بود و جوان میخواست به هر قیمت پدرم را ببیند جوان در ماه بعد بارها این تهدید را تکرار کرد جوان در ملاقات با پدرم اظهار داشت که بسیار بی پول است و پدرم 300 دلار به او داد و جوان با این پول به هالیوود رفت و این مقدمه یک سلسله اتهاماس برای پدرم بود و پدرم را به محاکمه کشیدند که اگر نتیجهش نامطلوب میشد می بایست به زندان میرفت. من در آن موقع این جریانات را نمیدانستم و در تعطیلات عید نوئل من و پدرم متوجه شدیم که اوزا چندان رو به راه نیست. روز 23 دسامبر من و سید که در منزل پدرم بودیم با یک دسته از رفقا برای گردش از منزل بیرون آمدیم و دو ساعت بعد از نیمه شب به منزل بازگشتیم و طبق معمول از چمنهای پشت منزل عبور کردیم. موقعی که به اتاق کار رسیدیم سر جایمان خشک شدیم چون اتفاقی کاملا غیر عادی رخ داده بود. نردبانی به دیوار تیکیه داده شده بود و پله های بالای آن مقابل پنجره اتاق کار پدرم بود پای نردبان توی عرف های یک کیف پول، یک جفت دستکش و یک جفت جوراب زنانه افتاده بود بعد دیدیم که در اتاق کار نیمه باز بود و شیشه کنار دستگیره در شکسته بود و باد میوزید و پرده را تکان میداد من وسید بدون آنکه حرفی بزنیم لحظهی به هم خیره شدیم من به یاد تپانچه ای که پدرم در کشوی میز اتاق خوابش داشت و به یاد کاوش های شبانه او برای جستجوی ولگردان افتادم. او بارها به من و برادرم گفته بود که وقتی کسی مشهور می شود، هدف اعمال بدکاران قرار می‌گیرد. اولین فکر ما این بود که پدرم در خطر است. ما بلا فاصله در اتاق کار پدرم و در سالان که گاف و اشیای قیمتی در آن بود به جستجو پرداختیم. همه ی اتاقها را جستجو کردیم. یک چیز تهدیدکننده کننده در آن سکوت وجود داشت. این حوادث برای چه اتفاق افتاده بود و این سکوت چه بود. به بالای پله ها رسیدیم همه جا سکوت بود و ما بسیار نگران بودیم و نمیدانستیم با چه چیز روبرو خواهیم شد. ناگهان پدرم که با تیزگوشی صدای پای ما را شنیده بود در سرسرای طبقه اول ظاهر شد. روی نرده خم شد و به ما نگاه کرد. لباسی رو که معمولا در میهمانی‌های منزل میپوشید بر تن داشت. پدرم با صدایی تند از ما پرسید آنجا چه میکنید؟ گویی حواستش جای دیگری است و ما را نشناخته است و بعد متوجه موقعیت شد. آنگاه در حالی که میخواست خودش را آسوده و رازی نشان دهد گفت او منظرت میخواهم، بسیار ناراحت هستم، حوادثی مهم روی داده است. شما بروید بخوابید و در اتاقتان را هم قفل کنید. فردا صبح همه چیز را برایتان خواهم گفت. احساس کردیم که در معرض خطر است. مستره بودیم و میخواستیم به او کمک کنیم ولی نمیدانستیم چه باید کرد. همه چیز عصر بود. از او پرسیدم پدر چه شده است؟ سرش را به تندی تکان داد و گفت سوال نکن بارو را فردا همه چیز را میگویم. من восیت آن شب نخوابیدیم به صداهایی که توی سرسرا میپیچید گوش میدادیم و بسیار مصطرب بودیم و تمام شب را با بحث درباره آنچه روی میداد گذراندیم صبح زود پدرم در اتاق ما را کوفت و گفت بیایید پایین من восیت ساکت به دنبالش راه افتادیم تا موقعی که به ساران نرسیدیم پدرم یک کلمه هم حرف نزد و بعد داستان را از نیمه راه آغاز کرد خب من تفنگ را از دستش درآوردم تفنگ مقصودتان چیست کدام تفنگ او جواب داد تفنگ را از دست جان درآوردم من با اضطراب پرسیدم از میز باری؟ مگر میخواست چیکار بکند او میخواست خودکشی کند پدرم به شرح ماجرا پرداخت ولی آنقدر حواسش پرتا ناراحت بود که نمیتوانست به درستی سخن بگوید بعد گفت، او میخواست اینجا خودکشی کند تا من مطمئن شوم. من تفنگ را از دست او گرفتم. و بعد آن را به من نشان داد. تفنگی کوچکی بود که معمولا خانوم ها میخرند. و بعدها روزنامه ها نوشتند که جوان آن را از یک اصله فروشی در هالیوود خریده است. پدرم ادامه داد. ساعتها طول کشید تا توانستم او را از این کار باز دارم. پدرم بود و ادامه داد. او مرا دوست دارد. ولی من او را دوست ندارم و قادر نیستم هیچ کاری در این مورد انجام دهم و بعد افسود، شما امروز به دیدار دوستانتان نمیروید؟ پدرم به ما نگفت جوان آن هنوز در منزل ماست ولی این را حد زدیم و پدرم می خواست ما از منزل بیرون برویم تا دیگر شاهد یک منظره دیوانه وار جدید نباشیم. بیحرف تقاضایش را پذیرفتیم و از منزل خارج شدیم و شب باز گشتیم. منزل خیلی آرام بود و پدرم بدبخت و اندوه زده و متزلزل به نظر می آمد. ولی جوان باری رفته بود و من دیگر او را ندیدم. پدرم درباره این حادثه دیگر به ما هیچ نگفت و ما هم هرگز در این باره از او سآلی نکردیم. ولی در ماه های بعد متوجه تغییری در او شدیم. قالبا غمگین بود و فکر می کردیم چون نتوانسته به عشق جوان جواب مثبت بدهد دهد چاره بدبختی شده است چندی بعد به عنوان شاهد در محاکمه پدرم حاضر شدیم. آن صحنه خودکشی تنها رنجی نبود که جان به پدرم داده بود. پدرم در دادگاه گفت که جان چهار مرتبه قفل در منزل رو شکسته است. او نمی توانست علت این معما را دریابد و جان را دیوانه می جان با اتومبیل خودش چنان به سرعت در اطراف منزل پدرم می راند که بارها نزدیک بود جان براستر این کار بگذارد. سخنان و پدرم در دادگاه گاهی غیر مفهوم می شد رنجان دیگران وقتی ظاهر می پدرم را غمگین می و جانباری او را بسیار نگران کرده بود